پوستین که هدف نهایی خلقت انسان چیست؟ هدف از خلقت انسان دو چیز هست؟ یه هدف میانیه یه هدف قایی و نهاییه هدف میانی ما خلق طول و اننس الله خدا در روی زمین انسان رو خلق کرده، نجای دیگه تا به بندگی مشغول بشه اما هدف از این بندگی چیست که چی شود تقرب الالله این هدف نهایی و قایی هستش به خاطر همین همه عبادات رو مشروط کرده به قربتن الالله با قافه. یعنی بلکه تقرب و نزدیکی پیدا کنن به خدا عبارت اون اخرایه جلب محبت الهیه. خدا مای عبادات رو به یک وسیله و ابزار برای رسیدن به تو و جلب محبت تو که شما بشیم محبوب ما، ما بشیم محبوب شما. این هدف قایی و نهایی هست.